بسم الله الرحمن الرحیم دواره مبانی فیخ نظام کلاس استاد حسینی پناخ بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلاته و علی سیدنا و نبینا و محمد و علی تیبی رب العالمین آمد اللهم دوام الله اعذهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اللهم كل ذو لديه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل الساعه وليا حافظا وقائدا وناصرا ومدينا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا فيها فيه سلام از عليكم خدمت حامي बुजुर्गان عزیزانی که از شهرهای دور و نزدیک تشریفه بردید و در حریم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه هم مهمان است. اهلا و سهلا خب یه بدیه چینش اینجوری اینه که شما اونور نگاه کنید من خیلی میکنم به من گوش نمیدید مجبوریم اینو قطعش کنیم آره بله آره آره هر گفتم اون گفتم اونور ببینید باقیش اینور خب بحث فقه نظام تربیت رو انشاءالله قرار خدمتون باشیم من برنامه رو دیدم چند عنوان بحث قبل از این گذروندید خب انهم دولا این کمک به است هست که بعضی از مباحث رو که لازم بود من برود بکنم امیدوارم که در بحثای قبلی گرفته باشید و نیاز به مرور اونها نباشه ما یک یکم سریعتر با سرعت بیشتری ببینیم سراغ مباحث خاص فقه نظام تربیت خب من چون بحث تربیت هست بذارید خودمون با تربیت رفتار بکنیم اول یه تذکری برای همه خودم و شماها داشته باشم در آستانه عید عید الله ال اکبر هستیم عید قدیر قواتی را از آقا امیر المؤمنین علیه علی السلام بشنویم انعن الامام امیر المؤمنین علیه علی السلام فی حمل عباد الله علی احکام الله استیفا الحقوق و کل رفق خب این رو روی تعملی بفرمایید از قرار دور در این رو نقی کردم خدمت رو. امام علی علیه السلام می که فی حمل عباد الله علی احکام الله اینجا این حمل معناش چیه؟ در در فرض من متوجه نشدم صداره تکلیف خب فی حمل عباد الله علی احکام الله در تکلیف کردن بندگان خدا به احکام خدا تکلیف نه یه تعبیر در تایر باید پیدا کنید فی حمله عباد الله یعنی چی؟ در الزام, الزام. خب الزام خوبه صدا فرانسیاد اومدم جدا بله خب تعبیر دیگه ای بله صدا از کجا اومد سوق دادن خوب نزدیکتر شدید فی حمل عباد الله این حمل اینجا به معنای واداشتنه یه چیزی بین الزام و سوق دادنی که دو بزرگ بزرگوار اشاره کردن الزام به تنهایی نیست چون الزام تو خود تکلیف بود شما فهمیدید تکتیف خب تکتیف درش الزام هست. ولی اینجا میفرماد فی حمل عباد الله الا احکام الله. اون چیزی که میخوایم بندگان خدا رو گرفتارش بکنیم، گرفتاری خیر حکم خدا تو حکم خدا الزام بود. یعنی یه کار زیادی ما امام علی علیه السلام از ما میخواد انجام بدیم. اون کار زیادی این هستش که اون چیزایی که خدا لازم کرده بر بندگانش، ما بندگان رو بیایم وادار بکنیم، سوق بدیم به تعبیر یه جوری برنامه‌ریزی بکنیم، کاری ترتیب بدیم که اون دستور خدا رو الزاماً انجام بده. در واداشته رو من بین تمام این تعابیر واداشتن رو انتخاب می‌کنم. یه جوری زمینه سازی بکنیم که اون احکام الهی رو انجام بده. خب، فی حمل ابودالله علی احکام الله امام علیه, علیه السلام می‌فرما. دو تا ثمره هست. یک استیفا الحقوق این معناش چیه؟ استیفا از چه ماده ای؟ از وفا یعنی کامل ادا کردن استیفا باب چیه؟ استفعال استفعال طلب مستر میکنه استعفاء یعنی طلب عف، استفار یعنی طلب غفران استیفاالحقوق یعنی طلب وفای به چی؟ طلب وفای به حقوق این الفلام حقوق حالا دوستانی که اصول خوندن الفلام چیه؟ استغراق درست عمومیت و شمولیت رو میرسونه امام علی میفرماز اگه ما بندگان خدا رو وادار بکنیم به انجام دستورات و احکام خدا استیفا الحقوق اتفاق میفته استیفا الحقوق یعنی اینکه که همه حقوق ادا میشه حقوق همه بندگان خدا با رعایت احکام الهی ادا میشه خب ممکنه کسی بگه که آقا الحقوق این الفلامش عمومیت رو رسون استقراق رو بود معناش اگه بخواد همه حقوق ادا بشه پدر ساد بچه اینجا با درد همه حقوق زن رو مرد ادا بکنه، همه حقوق برعکس مرد رو زن ادا بکنه. حقوق پدر و مادر بر فرزند، فرزند بر پدر و مادر و آخر. قرار باشه همه حقوق رو ماها ادا بکنیم که دیگه نایی برای ما نمیمونه. امام علی علیه السلام می‌فرماد که فی حمل عباد الله علی احکام الله استیفاء الحقوق و کل الرفق این کل لطف اون ذهنیت خطایی که الان به ذهن اومد رو داره برطرفش میکنه در عین اینکه همه حقوق آدم میشه ولی نهایت رفق و مدارا هم آعد اون اعضاء اشخاصی میشه که دستور خدا رو انجام میدن تکالیف الهی رو رعایت میکنن یعنی اگه بخوایم این دو تا کلمه رو توی اصطلاح فارسی دید. خلاصش بکنیم ما اصطلاحی داریم تو بحث های اقتصادی اقتصاد مصرف بحث بحروری بهره مناش چیه؟ با کمترین هزینه، بیشترین آعد و سمره رو ببریم این میگیمش بگیمش بحروری نامالی علیه السلام می اگه ما رو خط سیر احکام الهی حرکت بکنیم ما و دیگران خودمون را آیت بکنیم و دیگران رو هم تو مسیر احکام الهی نگهشون داریم این اتفاق میفته حقوق همه افراد استیفا میشه یعنی به طور کامل گرفته میشه همه به حقشون میرسن نهایت رفق و مدارا هم آید افراد میشه این واقعیتیه که در احکام الهی هست خدای مطارمون خط سرات رو اون پول سرات دیگه اون خط مرزیی که تمام منافع من برایتون تأمین میشه و کمترین زحمت متأمین میشم رو اون خط سیر احکام رو جعل کرده و تشریع کرده اگه ما ملتظم به احکام الهی باشیم این اتفاق میفته برای ما خب این روات رو در انتخابش جدا از مناسبت اید قدیر و ایامی که قرق در ایام ولایت میشیم از این چند روز آینده دیگه از ایده قربان گرفته تا میدید اواخر این ماه زلحجه همش مناسبت های پرمیمنت ولایت هستش جده از این مناسبت ها به تناسب بحثمون که فقه نظام تربیت هست این روایت رو خدمتون تقدیم کردم اگه ما بتونیم فقه نظام تربیت رو محقق بکنیم نظام تربیت بیاد با فقه سر و سامون پیدا بکنه البته من الان نباید مجتم رو باز بکنم نگم که فقه نظام تربیت چی هست با یک دو ساعت شما رو معطن کنیم تا برسیم به این که قراره چی گفته بشه آخر این جلسه ولی اگه قراره فقه نظام تربیت محقق بشه تو جامعه به کرسی عمل و تحقق بنشینه تمام حقوق افراد استیفا شده, شده و شده نها... و کمترین حد زحمت رو هم متعامل میشه خب شادی قرب آقای محمد زمان از جلاله تعالی فراجع و شلیف و, و تبریک به حضرتشون به مناسبت این ایامی سلاوت بفرمایید ایت بفرمائید. آیه سرود داشتید بله بله بله سلام فرمانده ما از سلام فرمانده تقریبا چند ماه گذشته از اجرای این سرود اسفند ماه بود دیگه پخش شد اسفند ماه الان هم بله 4 ماه چهار ماه این سرود کل دنیا رو گشت یه تو یه تیم دیدن گفتش که این سلام فرمانده جاهایی رفتش که ما حتی اسمشون هم نشیده بودیم زبان‌های ترجمه شد که تازه داریم می‌شنویم حالا من اصلا اسمش اینقدر عجیب و غریب بود که هنوز تو ذهن نیست بله یه سرودی که اینجا اجرا شد رفت کل آلم و گشت و به همه زبانها ترجمه شد و اجرا شد و سر و صدایی به پا کرد فکر نکنید جاهای دیگه با کمال میل و رقبت این سرود اجرا شد همون دعباهایی که تو ایران ما بود همون دعباهایی تو لبنان هم هست تو کشور عربی دیگه هم هست کشور غیر عربی کشور زبان انگلیسی ترجمه شده زبانهای دیگه در مورد این رو گوش چند تا سوال دارم یک کمی استراحت داریم بهتون بعد میام سوالات و سوالاتون اجره فارسیش نیست اجره تو لبنانه همه حفظی دارم بگم همه اجراش میکنم عربیش هم حفظی, عربیش هم حفظی خب بسیار آنی من در مورد این سرود حالا نمیخواستم استراحات بدیم نه روش صحبت داریم ما یه چند دقیقه یه دلنگ و بکنیم روی این سرود تا سوال دارم میشه در مورد این سرود اجرای این سرود که اینقدر دلچسب شد و مشتری پسند شد سوال کرد هدف از این اجرا چی بود؟ دنبال چی بودن اجرا کننده هاش که اینجوری گل بر برچه اساسی این سرود رو تنظیم کردن؟ چه اساسی تنظیم کردن شما از آهنگش گرفته تا متنش تا اون نحوه اجراش و الاخر تمام ریز و قضایی جزئیات اجراش چرا این روش رو به کار گرفتن فرض کنید مثلا هدفشون این بود که یه توجه ها رو به امام زمان بیشتر بکنن چرا سرود سرود بچگانه اونم اجرای مردمیش نه اجرای توی استودیو و استودیو ضبط بشه و هر کسی بخواد دانلودش کنه گوش بده نه کف خیابون آوردن همه اجرا کنن و ال آخر دیگه نمیخوایم کارشناسی سرود بکنیم میخوایم بس دنبال کنیم چرا این محتوا این الفاظ این تیکه هایی که اینجا تکرار می‌شد فرمانده و احترام نظامی و سلام و آمادگی برای یاری و و و, و, و مفاهیم دیگه‌ای که توی سرود بود این اجرا ازش چی به دست اومد و چه چی چیزایی از دست رفت پیامدهاش چی بود آسیبهاش چی بود این اجرا کدوم بعد متربی رو روش داد؟ کدوم بعد رو بهش توجه نکرد؟ و الی آخر. سوالات دیگه اینجا زیاد داریم ما. حالا من اگه بخوام فرصت بدم روی این سوالات فکر بکنید، جواب بدید. یکی دو تاش حالا داوطلب داشته باشیم یه گفت‌وگویی بکنیم. حالا روی چه اساسی این انتخاب شد؟ با چه مبنایی؟ با چه توجیهی این نحوه اجرا این نحوه محتوا انتخاب شد؟ یا چرا این روش؟ دو تا سوار رو یه مروری بکنیم و بعد بریم ادامه بس بله کارشناس مربی کودک اینجا نداریم کار با کودک کسی نکرده بله بزرگ باران صفحه اول بله احترام اخلاس خب اخلاص رو شما هدف دونستی یا مبنات دونستی یا روش چی شد. هدفش بود اون پایه و اساس بود یا روش بود یا محتوی بود. ببینید یه اجرای یه سرود که به از کنارات خب خیلی سرسادای کرد نذاش به بعدی از کنارش بگذاریم. تک تک کارهای تربیتی که ما انجام میدیم در مورد تمامش این سوالات رو میشه مزرک کرد. تک تک اقدامات و کارهای تربیتی که میشه دعوت به جلسه بود. تک تک برنامه های تربیتی که انجام میشه این سآلات در موردش مطرح هست دیگه بگذرم چیزم رشه کلامو از هم گصه هستیم زنگی خور ما در مورد تک تک اقدامات و برنامه های تربیتیمون میتونیم سوال بکنیم که با چه هدفی انجام شد هدف تربیت با چه مبنا و پایه این کار رو انتخاب کردیم انجام بدیم میشه مبنای تربیتی چرا این شیوه و این سفر رو انتخاب کردیم میشه روش تربیت بعد تربیت پیامد تربیت عوارض و زب... آسیب‌های های تربیت و الاخر اناسار مختلفی حالوشی یه اقدام تربیتی جای بحث داره تو کتاب های مفسر تربیتی از اونها بحث میکنن که تمام اینها رو ما باید خواه نخواه مد نظر قرار بدیم و این کار رو انجام بدیم من یکی دوتاش مثال میزنم ما یکی از موضوعاتی که توی تربیت باید بهش توجه بکنیم اینه که مخاطب رو درست بشناسیم اگه ما شناخت درستی از مخاطب داشته باشیم برنامه تربیتی رو درست انجام میدیم خب یه عده در مورد مخاطبشون، متعربیشون اینجور تصور دارن این یه عده‌ای که میگم عده کمی نیستن زیادن علم تربیتی که الان متاسفانه تو دانشگاه ما داره تدریس میشه بعضی جاها خود ما طلبوام جذبش میشیم و میبینیم اینا رو بدون نقد خوندنش با نقد کاری نداره بدون نقد میریم در بحث از اونا قبول میکنیم مبناش اینه که میگه انسان جز حیوان تکامل یافته چیزی نیست یه حیوانی ما حیوان متمدن حیوانی که مثلا قدرت تفکر پیدا کرده حالا پیدا کرداشم واقعا به نظر اونا پرساز اساس نظریه داروین و اینا واقعا پیدا کرده اتفاقی چیزی شد این آدمه غیر از اون حیوانی دیگه شد میمون بود شد این. ایوان تکامل یافته تصور میکنه کسی دیگه میاد متربی رو که در مقابل خودش میبینه چی میبینه انسانی رو که تربیت میکنه یه انسان صاحب شعور درک و فهم نحوه برخورد نحوه ترقی مربی اول با مربی دوم اصلا یه سنخن اینا زمین تا فرق میکنه یه نگاه سومی میاد، متربی و انسانی که مقابلش هست و میخواد تربیتش بکنه رو موردش چه تصوری داره؟ میگه که این مخلوق خدا و عیال الله هستش. الخلقو عیالی و احبل خلق الیه به بعبادی. این تعبیر ببینید، زمین تاسمون آسمون فقه یکی انسان مقابلش رو یه حیوان بلا یه چیزهایی تصور میکنش یکی مخلوق و خلیفه خدا میبیندش این چجور با اون تعامل میکنه اون آدم اولی چجور تعامل میکنه کاملا متفاوتم خب این نوع نگاه ما به مخاطب بود. دستگاه تعلیم و تربیت ما حالا در موردش بس میکنیم این تعلیم و تربیهت اون سیستم دستگاهش چیا هستش؟ یک انصالش اینه که شما نوع نگاهی به مخاطب چیه طرز تلقیت از مخاطب چیه سه تا طرز تلقیت رو دیدید دیدید که کل این سیستم دستگاه تربیت با یه انصالش چقدر عوض شد رنگش متفاوت شد بریم یه گوشه دیگه نظام تربیت رو ببینیم آموزش پرورش ما دو تا چیز رو ممکنه دنبال بکنه ممکنه آموزش پرورده ما فعلا حوزه رو نگاه نکنید فکر کنید ما در مورد آموزش پروردهش رسمی بحث می‌کنیم مدارس آموزش پروردهش رسمی ما ممکنه دنبال این باشه که دانش و خلاقیت دانش آموزها رو پرورش بده الان خیلی میخوان در مورد مدرسه تعریف بکنن که این مدرسه خیلی گل کرده و موفقه میگن چی میگن ما بهترین روش‌های انتقال مفهوم رو به کار می‌گیریم ما فنی ترین تخصصی ترین روش رو برای پرورش پر خلاقیت مسئولیت پذیری فلان فلان به کار میگیریم درسته؟ و مدرسی بخواد تبلیغ بکنه خودش رو شعار بده عوج شعار هاش چی دانش و خلاقیت اما هدف تعلومتریت خلاقیت و دانشه اینه که ما یه فلش رو این مموری رو پر اطلاعاتش بکنیم و تمام خلاص. هدف تعلیم تربیت اینه؟ یا نه اطلاعاتو داشته باشه توانایی تبدید اینا به یه اقدام و عمل و برنامه اینجور چیزار هم داشته باشه خلاقیت هم داشته باشه اینه هدف تعلیم تربیت اینا لازمه شن ولی کل هدف تعلیم و تربیت اینها نیست هدف تعلیم و تربیت باید چی باشه؟ تو نگاه دقیق حالا اینجا دیگه میشم اون برد نگاهش کنید هدف دقیق چی باید باشه ما اشتباهی که سقف تنیم و تربیت رو چی قرار بدیم؟ دانش و خلاقیت این اشتباه ما تو تنیم و تربیت باید دنبال چی باشیم؟ دنبال عبودیت و دینداری اتفاقا اگه شما خیلی روی این دانش از خب این دانش هم دانش مادیه دیگه و خیلی روی خلاقیت منور بدید یه جورایی زاویه میگیرید با دینداری و عبودیت حالا دیگه, دیگه این داستان رو باز نکنیم خب پس تعلیم و تربیت یه سری سوالاتی رو در مورد شما خواه نخواه باید جواب بدید که تعیین کننده هستن رنگل آب میدن به این اقدامات تربیتی شما من خلاصه عرض می‌کنم خدمتون که به این سوالات مهمی که قبل از اقدام تربیتی شما باید جواب داده باشید و اون اقدام تربیتیش رو انجام بدی بهش میگیم نظام تربیت. نظام تربیت پاسخ‌هایی هستن که شما به اون سوالات دادید. سوالات رو دوباره برگردید ببینید. این سوالا چرا؟ برچه چه اساسی؟ چگونه؟ چرا این محتوا روش؟ سمره چی شد؟ آسیب چی شد؟ کدوم بُعد تربیتی؟ و و این جور سوال. این سوالای اساسی که در اقدام تربیتی ما باید مد نظر قرار بدیم و بعد از پاسخ به اینها اقدام بکنیم، به اینها میگن نظام تربیتی. البته بین پرانتز بگم. یعنی الان مادرانی که دارن تو خونه بچه ها رو تربیت می‌کنن، که ما، مادران ما که ما رو تربیت کردن هدف از من رو برای خودتون نوشته داشتن ممنون رو نوشته داشتن ضعویش و محتوی اینجور چیزها اصلا اینا رو توجه بهش داشتن مسلمن فیلهاشون می‌بینی سوادم ندارن ولی بهترین بچه, بچه ها رو به جامعه تحویل میدن نه گاهی اوقات اینا ارتکازی تو وجود مربی شکل گرفته تو اون زیرساختای شخصیتش اینا جا افتاد و تو میخواد اقدام بکنه دقیقا رو مسیر درست. این کار رو انجام میده اتفاقا در مورد سرود سران فرمانده اون ابتدایی که منتشر شد یه اده از این آدم های روشن فکر و مثلا خیلی از خود متشکل موسیقیزان رو اینجورتی شروع کردن و عیب گرفتن که این سرود اینجاش اینجوری شد اینجاش اینجوری شد من دقیقا ایام نوروز یادمه یکی از هم دباسای خودمون مهمم بود توی گروه ایتایی بود دیدم یه نقد خیلی غیر منصفانه در مورد سرود سلام فرمانده گذاشته بود که این سرود محتوا هاش پاشنناسی نیست و نباید مفاائیم خیلی خشن رو به بچه انتقال معلا می... مثل ما داره این حرف رو میگه. بچه ها با خیلی ناز و ملوس و دیتیش ممانی بار میان فرمانده یعنی چی احترام نظامی یعنی چی یعنی بچه خب من یه جوابی بهش دادم دیدم جواب من اینجور با مسخره اینا جواب داد. من سوال و جواب و شبهه اینا رو بردم گروه یه گروهی داریم متخصصان تعلیم و تربیت دوستانی که انجامان تعلیم و تربیت هستن یه گروهی دارن انجامان تعلیم و تربیت اسلامی حوزه و شبه و جوابش و پاسخ این جوابی که من داده بودم و اینها رو هم اونجا گذاشتم و گفتم بیید قضاوت بکنید شاید به اندازه 20 30 صفحه متن رد و بدر شد هم ایام نوروز بود، هنوز این سرود خیلی مطرح نشده بود، گل نکرده بود. اساتید بزرگوارانی که هر کدومشون مدعی دارند در بحث تعلیم و تربیت. موافق و مخالف نکاتی گفته شد، مربطی کوتاهی کرده، اون ایام این حرفهایی کاش جمع میشد میشد، میشد یه مقاله منتشر میشد. ای کاش این اتفاق میافتاد که نگفتاد. بله، نقدهای وارد بود، ولی، چرا گل کرد چون ارتكازی و ناخداگا اون نقطه‌ای که یک دوست دوستا گفتن رو اخلاصشون رو اخلاصشون رو اون انگیزه سالمی که داشتن خواسته یا ناخواسته اون بهترین ها رو بهترین ها رو انجام دادن خدای متعال تو مسیر درست قرارشون داد که این جور شعر به دل نشست تو ایران و عراق و بحرین و لبنان و الی آخر همه جا گشت و همه جا هم تلاش کردند همین مضمون‌ها رو با همین قالب اداره باهنم قالب آهنگ اون های طوفان‌های موسیقیایی ش اینجور چیزا اراعش بکنن، اجراش بکنن اجراش بکنه بله گاهی اوقات ما توجه به این سوالات اساسی تربیتی نداریم ولی چون درست قبل از این توی مسیر درست شکلی شخصیت پیش اومدیم خواسته یا ناخاسته اقدامات و اقدامات سالمی میشه حبتی این نکته رو داشته باشید بعد ازش استفاده می کنیم. وقتی میخوام از فقه نظام تربیت بحث بکنیم از این نکته استفاده خواهیم کرد. خب تا اینجا من اجمالاً در مورد نظام تربیت بحث کردم. اگه کسی بخواد خلاصه این حرفای ما رو توی جمله بگید. نظام تربیت یعنی چی؟ چجور تعریف می کنید؟ توضیحاتم مثل این که مفهوم نبوده. نظام تربیت یعنی چی؟ سوالات سوالاتی که چارچوبه اون اقدام تربیت رو مشخص میکن. پاسخ ما به اون سوالات میشه نظام تربیت البته حالا این نظام اون سوالات اساسیش چند تای 5 تا 10 تا 15 تا اینا رو دیگه جای خودش این جای خودش کتاب هایی به عنوان نظام تربیتی اسلام یا تربیت اسلامی، این یک کتابه، یک کتابی رو عزت آیت الله مسباح رحمت الله علیه دارن بزرگان دیگه ای تو تعلیم و تربیت کتاب هایی در مورد نظام تربیتی اسلام نوشتن حالا معتبرترین و قابل استنادترین اشون استناد همون کتاب آیت الله مسباح هستش رحمت الله علیه فرطفه تعلیم و تربیت اسلامی نشر مدرسه که خوالات امرو ندارم این کتاب مفصلترین و معتبرترین کتاب برای شناخت نظام تربیتی اسلام هستش این تعریف اجمالی از نظام تربیت بود. ببینید ما نظام تربیت رو باید بشناسیم تا بعد بریم سراغ فقه نظام تربیت خب اینجا ماژیک هم داریم خیلی این دوتا به فقه نظام تربیت یا فقه نظام تربیتی این دوتا فرق دارن یا نه؟ چون یه بحث رو با عنوان فقه نظام اقتصادی و فرهنگی و اینها گزرانگید این سوال ها می پرسن و ایلا طرح این سوالی هم داره بود اولین دوره بین فقه نظام تربیت و فقه نظام تربیتی فرق هست ما الان دنبال چیم تو این بحث ها بله؟ باید بکنید فکر نظام از این هر بیره این همه اول احکام نظام های درگیز مثلا این فکر ما سازگاه یعنی این که من این سیستمی ولی این سیستم این ساختار درستگردن ساختار خود منا کالیشات این تو قومه شما فقه, اختص... فقه نظام اقتصاد رو درست؟ فقه نظام فرهنگ و دیگه چی بود؟ این فقه های فقه نظام چی‌ها رو گذروندید؟ همین دوتا اون دوتا به نظر شما بیشتر فقه نظام اقتصاد بود یا فقه نظام اقتصادی بود؟ کدوم بود؟ اولی بود. دومی بود بله در اولی خوب بسیار نقاط خوبیه بله نکته دیگه ای دارم دوستان من این نکته یاد داشت می‌کنم بعد باید در موردش بحث بکنیم که آیا نظام فقه نظام داره و اون نظام فقه رو بعد ببریم توی اقتصاد تربیت فلان فلان یا خود تربیتی که نظام داره این باید با فرق میزونش کنیم این دو تا شد دیگه یکی اینجور به ما میفهمونه که خود تربیت خود اقتصاد خود فرهنگ نظام دارند ما این نظام رو عرضه میکنیم به فقه و حق و اصلاحش میکنیم این یه برداشت یکی دیگه به ما اینجور میفهمونه که فقه نظام ما از دل فقیه نظامی استخراج میکنیم این رو رنگله ها به تربیتی بهش میدیم یه بار میبریم توی اقتصاد تطویقش می‌کنیم، یه بار میریم تو فرنگ یه بار شما بارو تو جامعه شنید الاخر ارسای مختلف زندگی این دو تاست دو تا کرده درسته؟ خب ما برای اینکه مشخص بکنیم فقه نظام تربیت حالا با اون نحوه اضافه اولیست یا نحوه اضافه دومی ازه بدید یه بار مفردات بحث رو خیلی سریع من مرورش بکنم که توی این نوبت اول بحث قرار تا 6 باشه آره نواندهی بودم خیلی سریع این مفردات بحث رو با هم مرور بکنیم عنوان بحث مشخص بشه من ساعت بعدی رو میرم سراغ یه عرصه خاص از فقه نظام تربیت یه بخش خاصی که خیلی واضحه فقه نظام تربیت رو تو غالب یه مثال ببینیم دیگه تعریف به مثال انجام بشه و دیگه بیشتر از اون بحث رو دنبال نکنیم ما تربیت رو اینجور میشناسیمش اینی که تربیت رو در خدمتون تقدیم میکنم از قید اخیل شروع کردیم فقه نظام تربیت ببینیم تربیت منظور ازش چی هستش کتابی رای عرافی دارن فقه تربیتی فصل دومش رو در صد صد و خوردهی صفحه هستش گفتگاهی مفصلی در مورد تربیتیشون مطرح میکنن تربیت رو با نگاه فلسفیش با نگاه مراجعه به نگاه اورفیش ببینیم کیا چی تعریف کردن جنبندی بکنیم اون استقرائی با این مناطقه بریم به یه تعریف خوب برسیم و انواع و اقسام روش ها رو برای تعریف تربیت به کار گرفتن نهایتش به اینجا میرسن که تربیت فرایند ایجاد تدریجی در یکی از ساحت های وجودی انسان به واسطه انسان دیگر به منظور شکوفایی های صدات های وی از طریق اقدامات ایجابی یا سلبی است این تعریف تعریفیه که بعد چاپ اون کتابیشون با دوباره نقد شد و اشکالات که به, تعریف به کتاب وارد شد و بود رو بررسی کردن به این تعریف نهایی رسیدن منظور از سلبیت این هست حالا فیلن دیگه اون زمینه ها شما ازش سرف نظر میکنیم میگیم تربیت یعنی این من این اسلاید رو در اخترارتون قرار میدم حالا این مطمئن مت... یه مقدار ازش عقب میافتید تو نوشتن یاداش برداری زیاد نگران نباشید مطلبی اضافه بر اسلاید میبینه دویاد داشت بکنید تربیت رو با این توضیحی که گفتیم اون فرایند ایجاد تغییر در دیگری رو اولا فرایند یعنی یه اتفاق آنی و دفعی نیست تربیت تدریجی هست یه پروسه یه پروژه افتدا داره مسیر پیمایش داره انتها داره مقصد داره دفعی آنی نیست تربیت البته ما داریم به تعبیر حضرت امام کسانی که یه شبه رهه 100 ساله رفتن ولی واقعیت این بود اونا یه داشته هایی داشتن این داشته هایی یه بار خوبش نشون داد مثل بعضی بزرگانی که بله بله, بله. ما میخوایم در مورد تربیت ما انسان‌ها بحث بکنیم آره درست تغییرات هم... همین الان این جمله رو میخواستم بگم فجزب نیفی مقامات جذب اون تغییر تحمول های آنی و یه دفعی اونی که بعضی از بسیجی ها به طبیل حضرت امام یه شبه قره ست ساله و رو میرفتن خب این داشته هایی داشت آمادگی های قبلی داشت اونجا سر صحنه حساس روبرو دشمند ایستادن، اون داشته ها خودش رو نشون میداد رو میامد یه باره دیگه هر جایی که باید میرسید اونجا میرسید ما داریم این اینجوری داریم که شهید در راه خدا، شهید در میدان جنگ، سوال نکی و منکر نداره، سوال قبل نداره. میگن چرا؟ میگن هرچی لازم بود جواب بده، زیر اون تیغ شمشیر جواب داده بود. میگه چیزی برای پرسیدن اینجا نداره. خب این داره حکایت از این چیکونه اینکه اون تغییر و جهش ها به خاطر یا آمادگی قبلی. آیته قرآن هم داریم. ان من لذین ان الذين تسللهم شیطان بودند. اینا لذین توال لهمن کم یوملتقل جمعان، این نماست ذل لهمش شیطان به بعد ما کسب بود. اونایی که تو صحنه معرکه تو دغدال روا با دشمن کم میارند و توال لهمن و کم، پشت میکنند و از صحنه معرکه جنگ فرار میکنن. قرآن میگه چی؟ این نماست ذل لهمش شیطان به بعد ما کسب بود. اون صحنه که ما بودنش خاطر اینی که قبلها نقضش هایی داشته. درغش قبلیش اینجا خودش رو نشون داد خب شما طرف مثبت هم ببینید مقاومتش به خاطر استدیگای قبلیشه یعنی که شهدا محاسبه میکردن حساب کتاب داشتن استغفار توبه مناجات داشتن که اون های کاردار بمونند به خاطر این بود یعنی آمادگی باید داشته باشیم اون صحنه اساس بله اون که فکر میکنید تغییر تحول هم دفعی است واقعتش اینه که دفعی نیست دفعی خودش رو نشون داده و الا توی تعلیم و تربیت های انسانی معمولی ما یه بارم خودش نشون نمیده کم اینجوری هستش که یه باره خودش رو متراکم بشه مثل صددی که جمع بشه یه باره با آزاد بشه و اون قدرت و سازندگی خودش رو نشون به دردماتی تربیتی نه معمولا خورد خورد تغییر ایجاد میشه در ما انسان ها پس تربیت الهی، اون هم تربیت هست ولی فعلا ما از اون بحث نمی کنی. اخلاق رو هم البته ما فعلا ازش بحث نمی کنیم در مورد تربیت دگرسازی بحث می کنیم نه در مورد خودسازی یا کارهایی که خدا در ما ایجاد می کنیم موقعی که ما اقدامی اندرام می دیم یه کسی ای رو در اشتغیر ایجاد می کنیم این رو فعلا اسمش رو تربیت می خودسازی یا دگرسازی این بلا که فرق بین فقه تربیت یا فقه اخلاق میشه اون تو فقه اخلاق بحث میکننش حالا باصایت تخصصی دیگه بعضی از آقا این نظرشون این نیست میگن ما تربیت رو به معنای کامل میگیریم بعضی از آقای این که میگن الان آیه آیه آل امزاده ماونه تهذیب حوزه خب ایشون اون مدرسه فرقی که دارن رافقه تربیت رو دارن بحث میکنن، آموزش میدن، تربیت رو به معنی کاملش گیرن عمد از اخلاق میدینن. ولی های عرافی ها میگن تربیت به معنی دیگرسازیه، اخلاق خودسازیه، تهذیب و تزکیه. این دو رو جدا میبینن حالا بگذریم از اینا یه جور مرزگذاریه دیگه. ما قرارداد میکنیم که تو این محدوده میخوایم بحث بکنیم. این محدودی بغل دستیشه یعنی یه یکی دیگه ای بحث میکنه. فقه افلاق بس میکنم کسی که میگه نه ما هر دوتا رو اینجا برست میکنیم برای اون بر چیز دیگه ای باقی نمیزه دیگه برای اونجا باقی نمیزه خب این تربیت رو که فرایند هست فرایندش رو با هم مرون میکنیم یه سری دانشهایی براش شکل گرفته که بهش میگن علوم تربیتی واقعا هم علوم هن. این علوم میان این فرایند رو ساپورت میکنن، پشتیبانی میکنن، خوراک برایش تأمین میکنن که موقع انجام دادن این فرایند تربیت درست انجام بشه. و این تربیت یه چیزی داره به عنوان نظام. ما در مورد نظام اجمالاً بحث کردیم. قرار شد که این اصطلاحات فقه نظام تربیت رو یه میدارو محکمتر هر بکنیم به این منظور از این چی هستش؟ خب تربیت پس اون اقدامی بود که برای دگرسازی انجام میشه تربیتی فرایند داشت علوم تربیتی داشت و نظام داشت فرایند تربیت معلوم اینا ها معمولا اینهاست از ایتای بینش انگیزه بخشی و سازی. چون نمیخوام بحث بکنم دیگه میگذارم رشتهها ها و گرایش های علمی که برای پشتیبانی از تربیت شکل گرفتن قدم به قدم لایه لایه تربیت رو اینا خوراک علمی بهش میدن خیلی متنبون تاریخ آموزش پرورش فلسفه تنم و تربیت اقتصاد آموزش و پرورش آموزش پرورش تطبیقی تنم و تربیت اسلامی مدیریت آموزشی برنامه ریزی درسی تکنولوژی آموزشی مشاوره و راهنمایی، روانشناسی تربیتی و اینا بعضی از علوم و دانش تربیتی هست دانش های خیلی متعدد و متنوعی تقریباً میشه اینجوری گفت هر شاخه ای از شاخه های دانش بشری یه جوری اومده یه خدمتی به تربیت کرده تاریخ اومده تاریخ تربیت رو تولید کرده فرصفه فرصفه تربیت اقتصاد اقتصاد آموزش پرورش نمیدونم مدیریت مدیریت آموزشی تکنولوژی و صنعت تکنولوژی آموزشی مشاقله تحصیلی آخر هر کسی و کل نیت ایوستن به لیلا هر کدومشون یه جوری اومدن پلاسه یادگاری رو دیوار تربیت نوشتم تربیت اون فرایند دیگرسازی پس فرایند داشت دانش‌های پشتیبان داشت و نظام ما نظام رو اجمالاً در موردش گفتگوی کردیم اون چارچوبه کلی که سر و سامون میده به این اقدام از این بحثای مخدماتی میگذرم نظام تربیتی پس این شد پاسخهایی که مبنا رو درست میکرد پاسخ به سآلات که هدف رو درست میکرد اصول روش ها، عوامل، موانع و محیط و ساحت های تربیت خب این تعریف ما از تربیت البته در مورد نظام تربیتی یه دیگه داریم اونو همین الان جداش بکنیم بذارید اونو همینجا بگم و و اون رو خط بزنیم که بگیم در موردون ما بحث نمی اینها انواع نظام های تربیتی هم بعضی نظام تربیتی رو این شکلی درست میکنن بعضی ها نظام تربیتی رو اینجوری درست می‌کنندش، آقای دکتر باغدی دانشگاهی ها ایشون رو دیگه می اون تربیتی دانشگاهی آی خسرو رو هفراش مثل وحی منزل میدونن نظام تربیتی رو دانشجو جورم تربیتی این میدونن اینه که دارید میبینید خب آیه مسواهی جور دیگه تر میکنن این شکلی تر میکنن و نظام تربیتی رو آیه عرافی جور دیگه میان سر و سامون میدن تر میکنن این آقایی من دار بحثای خیلی جزی و تخصصی هست دیگه زیاد بایش کار ند نظام تربیتی رو های عرافیه جوری دورانی ترایش می کنن مبنا هدف عوامل موانع اصول روش و الاخر محیط و ساحت ها رو می خب اون معنی دومی که از نظام تربیت به ذهن میاد مد نظر ما نیست اون نظام بیرونی تربیت ساختار تربیت سیستم تربیتی وزارت آموزش و پرورش، مدیریت های استانی ادارات شهرستان و آموزشگاه ها مدیر نازم و معلم همینجور از اون بالا شروع کنید از وزیر تا بید برسید به معلم سر کلاس اینم بهش میگن نظام تعلیم و تربیت ما اگه از فقه نظام تربیت میخوایم بحث بکنیم نظام تربیت مسلمن این نظام بیرونی نیست اینو کار نداریم ما ما نظام تربیت با اون معنای قبلی مد نظرمون بود اون رو داریم بحث میکنیم اینه که دارید تو این شکل بینید. حالا ما نظام تربیت رو تربیت رو شناختیم نظام تربیت هم در موردش گفتگو کردیم حالا فرد میخواد با این نظام تربیت چه کاری بکنه رو من احساس میکنم بحثایی مدار خسته کننده شد دیگه خمیازه ها و اینای یعنی کمی زیاد شد خب ما قرار بود شیش تمام بکنیم ازه بدید الان من یه استراتی بدم شیش بیم شروع بکنیم اون زمان دوم رو من احساس میکنم هرچی ادامه بدم اگه بعد برگردیم دوباره یه سرود بذاریم کلاس کشش داره ولی همین بحثار ادامه بدیم نه دیگه کسی چیزی متوجه نمیشه یه چند دقیقه استراتی باشه بعد ساعت 6 خدمتون باشیم ادامه بحث رو دنبال بکنم یه سلامتی یه نهت بفنیم. عاده عاصی هم دوستان مفصلیه همین دیگه همین دیگه که هم برشون نظام تادیتی اگه ما بتونیم قشنگ به نظام تادیتی اسلامی رو تمرینش بکنیم و کل استفان حقوق و کل رد بفهم یاد کار سختی کار سختی ها را می بیدیم, بیدیم. که